هشتوم در اوج انرژی تان کار کنید یکی از مهمترین نیازهای کاری بالا سطوح بالای انرژی جسمی ذهنی و احساسیه همه افراد با کارایی زیاد موفقیت زیاد و درآمد زیاد سطوح بالایی از انرژی دارند که مدت زیادی دوام میارند برای ایجاد و حفظ سطوح بالای انرژی باید تغذیه مناسب ورزش مناسب و استراحت مناسب رو در پیش بگیرید باید غذاهای سبک، مغزی و پروتئین بخورید و از همه انواع چربی ها، و محصولات آرد سفید، پاستا، شکلات، نوشیدنی های گازدار و دسر پرهیز کنید. باید هر هفته سه تا پنج بار و هر بار به مدت سی تا شست دقیقه مرتب ورزش کنید. همیشه برام جالب بوده که دوندگان ماراتون و شرکت کنندگان مسابقات سگانه شنا، دو و دوچرخ سواری، کسایی هستند که گاهی ساعت در روز ورزش می کنند و در عین حال در رشته کاریشون هم جزء کاراترین و پر ها هستند. به نظر میرسه یک رابطه مستقیم بین سلامت جسمی و انرژی از یک طرف و میزان بالای کارایی از طرف دیگه وجود داره حتما زیاد استراحت کنید بخصوص اگه کارتون خسته کننده است هر شب حداقل هفت یا 8 ساعت و بعضی وقتها حتی بیشتر از این خواب لازم دارید. اگه میخواید بهترین کارایی رو داشته باشید، باید حداقل هفته یک روز کامل و هر سال دو هفته کامل کار نکنید و به استراحت بپردازید. باید اون ساعتهای روز رو که به هوشتر و هوشیارتر هستید رو مشخص کنید. برای بعضی افراد این زمان صبح و برای بقیه در عصر یا شبه. برای شما هرطور که هست باید سختترین و خلاقانه ترین فعالیت هاتون رو برای ساعتی از روز برنامه ریزی کنید که در بهترین شرایط هستید به خصوص کارهای خلاق مثل نوشتن گزارش ها و ترها رو باید در اوج انرژیتون انجام بدید احتمالاً با ارزش سرمایه شما در کار تواناییتون برای خوب فکر کردن و درست اجرا کردنه. حد اکثر وری و کارایی نیاز به این داره که از سلامت جسمی و ذهنیتون به خوبی مراقبت کنید و اینکه روی مهمترین وظایفتون کار کنید که بالاترین سطح انرژیتون رو دارید این یک کلید اصلی بازده بالا و موفقیت بزرگه